با رضوی قبولی از اعضای همه بزرگواران مقدم به نوبه خودم تشکر می کنم از مدیران و مسئولان مؤسسه امبال سلام بابت برگزاری این دوره ارزشمند و همچنین خدا قوت به همه شما تودا و اساتید بزرگواری که در این دوره حضور به کرد. اخیر موبی هستم چند سالی هست که در مجموعه حلقه فخری روشناسی اجتهاد روشنا همراه با تعدادی از دوستان حاجه های ارحامی، حاجه های صانعی، های و برخی از دوستان این مباعث روشناسی رو تیدیدی میکنیم کانالی هم هست که آدرسش به صدای قابل مشاهده هست اونجا از روش آندردلاین اجتهاد اخبار درست و مباعثی که توزه روشناسی اجتهاد هست و پوشش میده امر کردن که دقائقی رو خدمت بزرگواران باشیم و نکاتی رو در این باره خدمت دوستان تقدیم کن. طبعاً همه بزرگواران با کلمه و استلاح روشناسی اشتراد آشنا هستند حتماً بعض بزرگواران مطالعاتی رو در این حوضه داشتند و بعض از بزرگان هم ممکنه اشراف کمتری داشته باشن و ورود کمتری به این بحث داشته باشن در این دقائقی که خدمت همه دوستان هستم ما یه مروری میکنیم بر اصطلاح روشتناسی اشتحار و روی کردهایی که وجود داره شما در این دورهی که حضور دارید اساسید مختلفی میان و از منظرهای مختلفی بحث روش‌شناسی اجتهاد رو مطرح می‌کنه چیزی که شما در انتهای دوره بعد بهش برسید یک نگاه کلان به مباحث روش‌شناسی اجتهاد و ابعاد و بخشهای مختلفی که داره و اینکه جای خودتون رو هم پیدا بکنید که کدوم بحث داره شما اولویت داره و که اون بحث ورود جدی تری داشته باشید مثلا موضوع بحث حقیق هم بحث روی کردها به روش شناسی اجتهاد هست از بحث اهمیت و ضربت این بحث که میگذاریم طبعا پساتید دیگه این مباعث رو مطرح کردن حالا از باب مرور اساتید مختلفی که درباره روش شناسی اجتهاد نکاتی رو مطرح کردن که حالا انشالله در دوره های آینده حاجه علی دوست و استاد علی دوست و استاد مبلغی هم انشاءالله خواهند بود که توی این دور زاران مشهدش مشرب شدن توپیق و حضور نبود که خدمتشون باش این بحث رو اولاً عمر خیلی کمی داره بحث روی شانسی اشتاد و اساتید محدودی هم توی این بحث ورود کردن استاد علی دوست و استاد مبلغی خیلی در اساتید سرشناس و اصلی این بحث هستم که حالا آثارشون رو هم تمام بشتید. ما توی بحث روشناسی اجتهاد دو تا روی کرد اصلی داریم و دو تا معنای اصلی برای روشناسی اجتهاد وجود داره از تا که اینجا خدمت شما میان و گفته بو میکنن معمولا به یکی از این دو تا معنی دارن این بحث رو به کار میبرن که اینها رو با هم مرور میکن اولین معنای که برای روشناسی اجتهاد میتونیم مطرح بکنیم که معنای استلاحی این روشناسی اجتهاد هم همین هست شناخت مکاتب فقهی هست ما اگر کل تاریخ فقاهت و اجتهاد شیعه رو از بالا نگاه بکنیم یعنی از بالا نگاه بکنیم کل فقاه هایی که در طول تاریخ شیعه اومدن و اجتهاد کردن میتونیم اینها رو به چند مکتب اصلی تقسیم بکنیم که زیل هر مکتب هم ممکنه شما باز مکاتب جزئی تری داشته باشید یک معنای روش چنستش داد همینه که شما کل تاریخ فقه شیعه رو از بالا نگاه بکنید ببینید چه مکاتب اینجا وجود داره و نقاط تمایزشون چیه اصطلاحات دیگه که ممکنه بکار ببرن بحث نگاه درجه دوم به استاد فقهی شناخت دستگاه استنباطی فقه های صاحب مکتب اصطلاحات دیگه که ممکنه به برن رایل مقصود همین است. یکی از مشهورترین دسته بندیهایی که از مکاتب فقهی وجود داره تقسیم به مکتب تجمیع زنون و مکتب تطبیق قواعد هست که گاه وقت مکتب تجمیه زنون به عنوان مکتب قوم و مکتب تطبیق قواید به عنوان مکتب نجف ازش یاد میشه که اینجا مشخص است که نجف و قوم اصلا جغرافیایی نیست وقتی از مکتب نجف صحبت میکنیم یعنی یک دستگاه استنباتی که بر روی تطبیق قواید خیلی تأکید میکنه بلی لزومن فوقهای مکتب نجف توی نجف نیستن ممکنه خیلیشون هم پی قوم باشن. کمان این حضرت آیت الله تبریزی رحمت الله علی خب متعلق بودن به مکتب فقهی تطبیه قواهد یا نجف ولی توی قوم بودن. و بالعکس توی نجف ممکنه افرادی باشن که اون مکتب فقهی قوم یا مکتب تجمیع زنون باشن. از برز سرین افرادی که توی مکتب تجمیع زنون هستن میتونیم به امام خمینی اشاره بکنیم و توی مکتب تطبیق قواد ما طول خویی. وقتی از مکتب شناسی فقهی صحبت میکنیم این بحث عمدتاً برای طلابی مفید هست که با فرایند کلی روش اشتاد آشنا هستند و میخوان حالا به صورت تخصصیتر تشخیص بدن که حالا فقه های نزدیک به هم این دقیقاً دقیقا چه تفاوتهای با هم دیگه دارن اما کسی که در ابتدای به مباحث روش اجتهاد و این مباحث هست طبعا بحث روشناسی اجتهاد به معنای تشخیص تمایزات فقه های بزرگ در دستگاه استنباطیشون شاید اولادیت خیلی زیادی برش نداشته باشه یعنی کسی که هنوز مقدمات و فرایند کلی اجتهاد و فهم یک مسئله فقی رو هنوز تو ابتدایاتی شد اینکه حالا بیاد بگید حالا تمایزات مثلا مکتب فقیه تطبیق قواعد با تجمیز زنون یا مثلا مقایسه روش اشتاری و طول خویی با حضرت امام اولویت اولش نخواهد این بحث امدتاً برای قضربار مفید هست که با کلیت روش اجتاد و آشنا هستن بعد میخوان به صورت اتخصوصی تر تمایزات مکاتب و مناهج مختلف زخی رو بخوان مطالب کنید توی دو مکتب اصلی که وجود داره تجمیه زنون و تطبیق و باز اینجا خود استاد علی دوست خوبی رو ایجاز بیان کردن و کتابی هم که در دست نگارش دارم، این کتابی هم استاد دوست در دست نگارش دارم عنوان روشتیانسی اشتهاد که انشالله به زودی منتشر بشه این بحث رو اونجا رو تفسیل تر میتونید بدید اجمالا خب، یه سری از بزرگواران آشنا هستن با این تا مکتب اصلی مکتب تجمیع زنون اسمش رو شدیه معتقد نیست که شما اگر که زنون زعیفی رو داشتید به صرف ضعیف بودن بخواید اونها رو کنار بذارید میتونید از جمع کردن زنونی که فقط قوی نیستن در کنار همدیگه میگذارید و به نتیجه نمیسید. در مقابل توی مکتب تطبیق قواعد یا مکتب نجف یا مکتبی چارچلوخویی، چارچلو تبریزی و این بزرگواران هستن، اونها اینطوری اجتهاد نمیکنن. اونها میگن که اگر یک دلیلی ضعیف باشه، اون ضعیف رو کنار میذارن و محلی بهش نمیده. در مقابل توی مکتب تجمیل زنون اگر هیچ دلیلی ضعیف باشه این دلیل ضعیق کنار گذاشته نمیشه به سرپین که حالا زعیفه. نه بقیه عدلده رو هم چک میکنن گاه اوقات در کنار هم گذاشتن عدلده ای که اگر به صورت سردی میخواستیم باش مواجه کنیم ضعیف بودن و مردود شدن از کنار هم گذاشتن این میتونیم به نتیجه بریسیم حالا یه ویژگی هایی رو هم توی مکتب تجمیه زنون برجسته تر هست مثل مثلا ت میشه گرسی الان ممکنه خیلی اوقات تصریح هم کمتر بکنن ولی توجهی که دارن به مقاصد شریعت توی تجمیزونون تر هست و اگر که مسئلهی باشه که گاه اوقات ادله لفظی یاری نکنه گاه اوقات به کمک مقاصد شریعت قضیه رو پیش میبرند در مقابل توی مکتب نجرد به این به های داده میشه و از اصول عملی کمکی میشه توی تدبیقه وارم که مکدی و مکتب نجرب با طول خویی ها طول که اونجا خیلی بعد هست که ارز کردم که اگر دلیل زعیف باشه کنار گذاشته میشه و خیلی سریع سراغ اصول عملی میرند برعکس مکتب تجمیزونون که به راحتی سراغ اصول عملی نمیره سهی میکنه با تجمیع زنون حتی با مقاصد شبیعت بتونه فهم بکنه که مقصود چی بوده و به حقیقت مطلب برسه فقط دنبال این نیست که یه اصول عملیه بیاره و یه تعذوری رو بخواد ایجاد توی این معنا که شناخت مکاتب تقریه است باز میشه چند تا مثال لیه خدمت دوستان تقدیم کرد مثلا توی روش اجتهاد آیتولا برو بروجردی اگر بخوایم مکتب ایشون رو بشناسیم چند تا ویژگی رو میشه مطرح کردی که ایشون وقتی روایتی رو میبینند توی بررسی روایی یکی از ویژگی های مکتب اینه که شرایط فرنگی و اجتماعی صدور و روایت رو در نظر میگیرن. یعنی وقتی روایتی رو میبینند حتما ایشون میره نگاه میکنه که این روایت در چه زمانی صادر شده شرایط فرهنگی و اجتماعی اون زمان چطور بوده و قطعاً پرسش راوی و پاسخ امام ناظر به اون شرایط اجتماعی مثلا الان شرایط ما با زمان شاه فرق میکنه وقتی کسی حرف میزنه مثلا میگه اصلاحات سیاسی الان یک چیز دیگه در میپرسه زمان شاه که اصلاحات چیز دیگه در منظورشه به زمان سؤال کردن رابی خیلی مؤثره این که مقصودشی یا مثلا یکی از روش هایی که ایشون به کار میگیره یگانگی روایات ایشون معتقدم خیلی از روایاتی که از طرق مختلف نقل میشه که ظاهر شبیه همه در واقع یک روایت بوده که با الفاظ مختلف که اقایت رو یا مثلا تو همین معنای رو به که به معنی شناخت مکاصد فوقه های بزرگ هست مثلا توی ردوش اشداد از امام این نکته برجسته است که توی باب معاملاتشون خیلی نگاه اقلایی دارند یعنی ورودشون توی باب معاملات به خیلی اقلاییه. برخلاف باب عبادات که نگاه اقلایی کمتره توی دستگاه استنباتی و اشتادی حضرت امام وقتی ایشون باب معاملاتی میشه نگاه اقلاش پردند. نکات که دارم عرض میکنم حالا مثلا این روشت اشتادی حضرت امام رو زیاد میان و خدمت دوستان هستن. من دارم مثال میزنم از معنای اول روشت شناسی به معنای شناخت مکاتب فقهی که وقتی میگیم روشت شناسی اگر منظورمون این معنا باشه یعنی مکاتب فقهی اینا مثال هاش همین بحث رو مثلا نگاه اقلاده با معاملات رو توی کتاب مکتب فقهی امام خوانی استاد زیادی صفحه 267 متر یا باز نکته دیگه که مثلا در روش فقهی از تمام میشه اشاره کرد اینه که ایشون توی بررسی روایات مقاصد شریعت رو در نظر گرفتن و روایات یل روا از نظر سندی مشکل نداره ولی این حضرت امام برعکس خیلی از فوقه ها که این روایت رو گفتن سعی و سند رو پذیرفتن، حضرت تمام گفتن سعی و سنده ولی نمیپذیرن. چون با مقاصد شریعت همخوانی نیست. این هم باز توی کتاب استاز زیادی فر اونجا این مثال با هم بحثی کردن و مطرق. این جز باز، ویژگی های مکتب تقریه از تعمامه که ممکنه شما توی بعضی از مکاتب تقریه کمتر بگید خب پس اولین معنای ررشانسی اجتاد یعنی شناخت مکاتب تقریه فقاه های بزرگ دستگاه استنباتیشون چطور بوده و چه تفاوتی با هم داشته مهمترین تقسیم بندی که تا الان وجود داره مکتب تجمیه ظلم و تطفیه یا قوم و نجف تو استاد سه منذر حکیم میشوند اینکه که مقدر قوم و نجرف رو کمتر به کار دارید که دفعه باعث سوء برداشت نشه. به خب دوستان ارز کردن که منظور تقسیم جغرافی است. اما خب دانش از روشنسی اشتاد یه دانش زهوری هست عمر خیلی زیادی نداره برعکس اسود و فقر ما که علمای بسیار بزرگی صدها سال بحث بحث کردن برشناسیه شاد به شدت عمر کوتاهی داره زیرا مباحثش در حال شدنه در حال تکامله و این توقو هم نباید داشته باشید که انتهای دوره یه مثلا خیلی همه همه چیز چارچوبمند و دقیق مثلا حل شده باشه شما بعد از این دوره ان ورود خواهید کرد به عنوان پژوهشگران برشناسیه شاد و خودتون این دانش رو به پیش خواهید بود نه که لزوم همه چیز آماده باشه و بخواید فقط مستخفانده بشه نه خیلی وقت کمک کنید که ادلیاتش بشه. یہ مکتب شناسی فقهی فقه های بزرگ و فهم دستگاه استنباطی فقه های بزرگ اولین پرسش ممکنه پیش خب اینه که چه چیزی میشه مکتب چه چیزهایی رو کنار هم بذاریم میشه مکتب فقهی. چه محورهایی رو مثلا از مکتب فقهی امام بررسی کنیم میتونیم بگیم ما مکتب فقهی امام رو بررسی کردیم. یه سوال خیلی مهم اینجاست شما وقتی میگید مکتب فقهی یعنی چه محورهایی چه شاخصه هایی رو میخواهید بررسی بکنید؟ حقیقت مسئله اینه که سر این قضیه تفاهم وجود نداره. لفش هم همین نمودور بودن دانش در شانس اشتغال. یعنی الان این هنوز تثبیت نشده بین اساتی به این حوزه که وقتی میگیم روش شناسی اجتهاده مثلا طول طلا دقیقاً دقیقا چه محور های برسیدش یا مثلا میگیم روش جناسی اجتهاده دقیقا چه محور الان در حد پیشنهادهای وجود داره و یه سری اساسی هم برای پیشنهادها یه سری آثار رو تعلیف کردن ولی تسبیت نشد مثلا استاد اصلاف یک دست هفت هفتگانه یا پنجگانه رو ایشون دارن آخرین پنج کنانو بیشتر مطرح میکنن که میگن وقتی میگیم مثلا مکتب فقهی ها طلاق بایی حضرت امام های طلاق رو پنج تا یا هفت تا محور رو باید چک بکنی و با شنافت هفت محور یا پنج محور میتونی بگی مکتب فقهیشون چی فقه و نس فقه و موضوع یا همون موضوع شناسی میکنم بزرگترش رو میکن. فقل موضوع یا موضوع شناسی فقل آرا یا فقل اقوال ف... مثلا روش بررسی اقوال این فوق هم چه فرق می کن فقل لغا فقل سیر فقل تطویق و فقل تشتیق این پیشنهادیه که ایشون دارن که توی بعضی از مواسط جدیدتر دوبه پنج را تحلیق دارن یا مثلا مثلاً اصل دیدوس تقریباً نزدیک 9 سال پیش یه 4 تا شاخص رویشون مطرح کردند. حالا ممکنه ایشون الان جنبانشون این باشه که نمیشنن اصلاً 5 سال یا 6 سال مهربان مطرح. 9 مواجهه با منابع ارده 9 مواجه با مقاصد شریعه و ویش شریع از خور بیکلان ابر کردند. و صناعت محور بودن یا تجین زنونی بودن ایشون چهار تا شاخص یا محور با مطمئن میکنه که وقتی میخوایم تشکیز دیدیم که یک دقیقی دستگاه استنباتی چطوره این چهار تا رو باید بربیسی حالا ما منتظر این کتاب اگر منتظر به شو طبعا منم گفت این طبعا مانسان در حال تکامل هست بعضی از مواعظ که تحت منبان روشناسی اجتهاد مطرح میشه روشناسی اجتهاد نیست یعنی میان میگن که مکتب شناسی فقیقی میخواییم بکنیم روشناسی اجتهاد ممکنه دوره همجایی ببینید برگزار شده ولی به معنای واقعی کلمه روشناسی اجتهاد نبوده بعضی از مواعظ یا آثاری که مشاهده میشه بخوایم آسیب شناسی بکنیم میان و مبانی اصولی یک فقیق رو مط در صورت که همطور که بیدی بی روشنانسی اجتهاده یک فقیر یا مکتب شناسیش یک سری شاخصه هایی رو باید داشته باشیم که اون شاخصه ها تشکیز بدیم که دست بایستن با اون چطوره خیلی برجستهش اینه که تجمیه زنونی یا تصویر قبایی اما اینکه بیایم آراء اصولی یک فقیر رو مطرح بکنیم و شانسی رو بذاریم دقیق نیست. یا بعضی از مواحث دیگهی که دیده میشه اینه که میان زندگی یک فقیل رو برای شما توضیح میدن به اضافه یه سیده از آراج و اسمش رو باز میزنن روشتانسی اجتحاد این هم روشتانسی اجتحاد نیست خیلی زیاده یعنی شما دو بکنید توی اینترنت داشان 80 فایل‌های های خیلی زیادی رو می‌بینید که یا دارن مبانی اصولی رو مثلا می‌کنن یا تاریخچه زندگانی قوها رو مثلا می‌کنه اسمم گذاشتم در 80 که شما می‌خونید میگید چه مباحثی که خیلی مهم نیست یا خیلی شاید ارزشمند ن부شه ولی ریشاستش به معنای درستش به شدت لازمه به معنای شناخت مکاتل و فقهی لازمه شما اگر بخواید که تو هر زمینه فقهی اجتهاد بکنید لازمش اینه که متوجه بشید چند جور میتونید اجتهاد بکنید چند مدل اجتهاد وجود داره و خیلی رشد میده یا یعنی اینکه مثلا نعاوری های اجتهادیه مثلا هر کدوم از فقاهای معاسف چیه اونا رو استفاده بکنیم توی کارها ما. پس اولین معنایی که برای روشناسی اجتهاد عرض کردم شناخت دستگاه استنباطی یک فقیه و اون فقی هم فقیریه که یک دستگاه استنباطی متفاوتی یه جدید داره، فرق میکنه ولی اینطور نیست که تعداد هر منشهدی که وجود داره یک مکتب شناسی فقیر هم داشته باشیم، نه مثلا دستگاه استنباطیشون باید به صورت جدی با بقیه متفاوت میشه. بعد منابع منابعی که اینجا وجود داره کتاب روش شاد استاد علی دوست، مکتب فقی امام، مولستاد زیایی کتاب مکتب قوم و نجب استاد ایزدی، مقاله مقایسه روش شاد صاحب جوار و محقق خویی، استاد علی دوست در جای دوتی و دروس مکتب شناسی شیخ انسالی که استاد دعوکی هستن و بباید دیگه ترفیمون مکتب شناسی حضرت تمام یا مکتب شناسی حضرت آقای که افتاد مبلغی هم چند سال پیشون داشتن داشتم نزده دوازده جلسه شد مکتب شناسی فخریات تو بخونه خب این تا الان هرچی گفتم اولین روی کرد و اصلیترین روی کرد به روش شناسی اجتهاد بود و اصطوری که میان اینجا بعضی ها منظورشون از روش شناسی اجتهاد شنافت فوقه های بزرگ. این یک معنی اما دومین معنی هی که برای روش شانسی وجود داره، ما این فایل رو بعد از تکمیل نهایی تو کانال منتشر میکنم. ما دوستانی که ایتران یاد اگر عقب می کامل که شود منتشر میکنم. گرچه الان هم دستور پر وسی میتونم طرح دوستان معنای معنایی که برای روش شناسی اجتهاد وجود داره معنای دوقویه روش شناسی اجتهاد هست. معنای غیر اصطلاحیش هست. به چه معناسه معنایی که اول آدم میبینه مود به ذهنش خطور میکند روش شناسی شناه شناخت روش اجتهاد این معنای دوم که شما بشناسید روش اجتهاد متعارف رو یعنی عموم فقه‌ها اکثر به فقه صورت کلی روش اجتهادشون به این شکل هست چیزی که شما بعد از چند سال درس خارج باید برسید استاد مبلغی می‌فرماین که هدف درس خارج آموزش روش اجتهاد است و آنچه در درس خارج نقاط نیست، آموزش روش اجتهاد یعنی مچهد، یعنی کی مچهد؟ یعنی اینکه روش اجتهاد و بدانت، چه مچهد و این یه سطح عمومی داره که شما وقتی تقون اجتهاد بکنید اکثر افقا میگن روش اجتهاد قابل قبول یه اجتهاد تخصیصی تری وجود دار که میشه شناخت مکاتل و فقی تحالا درست دقیق مثلا شما بخواید طبقه مثلا یکی از مکاتل فقی بخواید ولی به صورت عمومیش پایه اول اجتحاد شناخت دردش اجتهاد. این فرق میکنه با شناخت دستگاه استنباطی فوقه های بزرگ این که مثلا شما وقتی میخواید اجتهاد بکنید از کجا شروع بکنید یه مسئله گذاشتن جلوی ما اون نماز صبح چند رکعت؟ خیلی ساده. نماز صبح چند رکعت؟ از کجا می‌خوام برسیاری که دو رکعت, رکعت نیست. اول رو ببینم، روایت رو ببینم، کلام فقها رو ببینم، اقوال رو میخوام ببینم، کدوم اخبار رو ببینم؟ روایات رو میخوام ببینم، کدوم روایات رو و کدوم کتاب رو برم ببینم؟ و مسائل رو ببینم کافیه. همون باب صلاتش رو ببینم کافی یا بقیه ابوابش رو هم باید ببینم؟ موضوع شناسی میخوام بکنم چجوری موضوع شناسی بگم انواع موضوع شناسی چیه موضوع شناسی عرفی فرق شما موضوع شناسی شرعی چیه هر کدومش چه گامهایی داره ببینید این بحثی که الان دارم میگم با اون بحث قبلی فرق میکنه این یعنی شما یه مسئله گذاشتن رو میز شما بعد از مثلا چند سال درس خارج اول اخرش رو بلد بشید اولین گام حل مسئله چیه؟ تفریه فروه بیان مسئله تحلیل محل نزای بررسی اقوال همین الان شما از خیلی از طلبهای درس خواهی بپرسید که اولین قدم حل مسئله فکر هیچیه نمیدونم و به صورت سنتی هم توی دروس حوزه این آموزش داده نمیشه یعنی شما درسی رو به ندرت پیدا می‌کنید که درستید به شما بگید بسم الله الرحمن الرحیم گام های حل مسئله فرقی مثلا این 20 گام هست گام اولش اینه زیلش این هاست مثلا باز با این مثلا به شما بگید گام اول موضوع شناسی هست انوای موضوع شناسی اینه و هفت اگه مثلا موضوع شناسی ارکی باشه باید این پنج قدم رو کنید موضوع شناسی شریف باشه مثلا این سه قدم را کنید گام بعدش مثلا بررسی اقواله اگه موضوع خیلی مستحدثه باشه، توی بررسی اقوال مثلا این سه تا کتاب رو باید دیدید و مثلا گامه بعد این معنای دوم روش شناسی اجتهاد برای همه لازمه که شما به عنوان یک طلبه اول و آخر دستگاه استنباطی معمودی چطوری؟ حالا کاری او دستگاه استنباطی خیلی برجسته پیش رفته نده. ماه سروترش درست باشه. الان مثلا یک کتاب چاب شده، دیدم مثلا یک طلبه ای رفته چند تا روایت رو برداشته نمیشه که این روایت و سنده بعد یک نتیجه گرفته نتیجه عجیب غریب. چرا چون نمیدونه دستگاه استنباطی اول آخرش تجوریه؟ روایت سعی سنده. ولی خب اعراض شده از اون روایت سعی سنده. و وقتی یه میشه از روایت سعی و سند توی بعد روایی به اون روایت یه نمیشه استناد کرد خب این چند تا روایت پیدا کرده فکر کرده مثلا بقیه فقها های روایت رو پیدا نکردن فقط اون کتاب نوشته و منتشر کرده حالا بود چند نفر جمع بشن برن مثلا این ای که نگایند گفت توی جامعه رو جمع بکنه در صورتی اگر همین اولیات و بدیهیات رو می‌دونسته آقا شما وقتی می‌خواید درباره یه قضیه بعد از بکنید آقا این ده گام رو داره، ده رو با بکنی، زید هر گام مثلا این گام های فرعی بوجود یه اینقدر وارد آرای عجیب فرید نمیشه خب این بیانی هم که از استاد مولده داشتم من بخونم از روش در درس خارج استاد باید شیوه استنباط آموزش دهد ولی این اصلا آموزش داده نمی شود حوزه در واقع درس خارج هدف را گم کرده است. نتیجه می شود که یک نفر 20 یا 30 سال در درس خارج میماند. درس خارج باید شیوه را بیاموزد که اگر 5 تا 6 سال این روند ادامه پیدا کند ش عااصل شود و بعد از آن فرد بتواند به تحقیق بپردازد. هر استال در درس خارج به گونه ارتکی روشی دارد به گونه ارتقاازیانگاهقا خودش نمیتونونه. طوزی بده برای شما ولی روش داره که شاگرد اگر هوشیار باشد پس از سالیانی طولانی در میوته استادش چه روشی داره؟ ببوا همه فقط یکی دو نفر از این شاگردان به درجه استاد میرسه. حالا این 5 سالی که استاد تمام نزدش هست که با 5 سال درس خارج رفتید مجتهدی. یعنی کلیت فرایان رو یاد گرفتید، یه سال دیگه زحمت می‌کشید بعد مثلاً میشه مشتبه. چون آقا علی دوستام روی مردوش ده یازده سال تحکیب دارم که مثلا ده یازده سال یه درس خارج روشمند رو کسی شیدت بکنم مجتهبیش این از اینیس دیست سال سیز سال چلی سال پنجاس سال دوی طرف میره و منتظر یک موجزهی موجزه مثلا رو به ده. حضرت جبرهی مثلا نازل بشه بگه تو مجتهب شد یه فرایندی باید طلب یاد دیگر. و یه نقطه خیلی مهمه اینه که اگر حالا بعضی دوستان تازه خوان وارد درس خارج بشن این توقع رو نداشته باشید که بگردید و مثلا استاد پیدا بکنید که حتما به شما این گام ها رو آموزش بده کمه مثلا شاید پیدا نکنید بعد شما از همین اساتیده معمولی که بیانشون رو میپسندید انتخاب بکنید ولی خود در این حال حواسمون هم باشه که من می‌خوام از این درس زویش شاد رو یاد بگیرم ما یکی از اساتید خدمتتون مثلا بهشون گفتم که شما الان چجوری مثلا این کار رو انجام دارید؟ برا من توضیح بود. یا مثلا گایی خود مپرشتن مثلا چجوری از این ظهورگیریتون رو برا من توضیح برید؟ چیکار کرد؟ حالا خودشون هم مثلا یه تعمالی بعد مثلا همی که می انجام میدن. به،, به تفصیل نبود برای خودش. یه تعمالی می‌کرد بعد شروع می‌کرد توضیح بود. برای خودشون هم خیلی خ ما اینقدر استاد نداریم توی در خارج که بیان مثلا گام به گام روش ها اشتاها دوزم دو آموزش بکنم ما کاری که میتونیم بکنیم اینه که در همین دروست شرکت میکنیم اما حواسمون باید باشه که ما قرار نیست اینجا فقط جزو یاد داشت بنویسیم از دروسته و آراء استاد بزرگواد ما قرار نیست نویسنده آراء فقری استاد درس خارج باشیم ما قرار نیست روش ها این هدفی که فاضلش میشه فاضل توی همین معنای روش شانسی از اضافه هم یه بیان می‌ذارم اشتراک یعنی چگونگی استفاده از منابع یعنی متد استفاده از منابع این اشتراک است یا استاد مددی. اگر ما روش را متد را یاد بگیریم و به کار آماده کنیم، میتوانیم تحقیق رو تحضیح دو کنیم که در توی سه چهار سال بتوانا در تمام عوافق نظر بدن. باز تحکید میکنم این سال های سه سال یا پنس سال به این است نیست که بعد از این سال ما مشتهد هستیم. نه یعنی اینکه اون فراین کلی رو یاد گرفتیم یه پنج شیش سال دیگه وقت زحمت بکشیم که این ملکه باشه مشته این معنای دوم و روی دوم به روشناسی اجتهاد که منظور شناخت گام حل مسئله فقهی هست مباعثش معمولا دو بخش یعنی آثار اساسی رو ببینید معمولا دو بخش یا میان فرایند کلان اجتهاد رو برای شما توضیح میدن یعنی میگن به صورت کلی اجتهاد از کجا شروع میشه و کجا ختم میشه یه سری از اساسی میان خورد فرایند ها رو بحث میکنه مثلاً به شما میگن که وقتی میخواید بررسی دلالی انجام بدید ها شینه حالا به تعبیر خرد فرایند بررسی دلالی یا مثلاً خرد فرایند بررسی اقوال شما وقتی میخواید اقوال رو بررسی بکنید حالا ممکنه توی به ساعت ممکنه بررسی اقوال رو بذارید مرحله دوم ممکنه اول سوم بوم اون یه بحث فرایند کلان و کلیش بعد خود همون هم دوباره فرایند داره یعنی بعد از اینکه مثلا شما گفتید بررسی اقوال مرحل دومه دو اجتهاد هست خود بررسی اقوال هم دوباره خودش فراین داره از کجا شروع بکنیم به کجا ختم بکنیم پس مباحث روی کرده دو به دومه برشنسی اجتهاد که میاد به شما گام های حل مسئله فکری رو یاد میده بعض از اساطیب میان کلیت رو به شما میگن یه سری اساطیب میان تو هر مرحله خورد میشن برای شما توسید بذار مباحث مختلفی که این دوره یا بعد از این دوره میشنوید بتونید دستهاندیش بکنید که چه بحثی داره کجا قرار میشه توی این معنا یه سری از اساتی توصیفی برود کردن یه سری اساتی تجویزی برود کردن به چه معناست؟ یعنی یه سری اساتی من به شما میگن که عموم فقه ها به صورت کلی گام های کلان اشتهادشون و خورد فراین چطوری هست توصیف می کنن. یه سری اساتید میان میگن که چطوری باشد. اینم باز معاذب باشیم بحثوارو قاطی نکنیم. یه سری اساطیب میان میگن که چطوری هست. یه سری اساطیب میگن چطوری باشد. مثلا مواس استاد واعزی، استاد جلالی، استاد درایتی، استاد باسطی خیلی از مواسشون ناظر به توصیف ده. می‌گن که فراین کلی و اجتهاد فقها امدتاً به این شکل هست ولی مثلاً تو از دیگه از بزرگواران که شادیده دیده اصولشون رو تجهیز می‌کنن که برای شروع البته این توصیفی‌ها برای ما بهتر چون تجهیزی‌ها باید گفتگو بشه دربارش برقی‌ها فقاه‌ها بیان نظر بدن آیا این تجهیز درسته درست نیست بعد ما استفاده بکنیم. پس مواحظی که توصیبی برود کردن و میگن که عموم و فقاها نوعاً اینطوری انجام میدهند، این برای ما بهتره تا از که تجویز میکنند. ها برای من طلبه ای که هنوز مجتر میستم اولادیت ندارد. و خب مشخص شد دیگه که این روی کرده دو به به غلشنسی اشراع برای عموم طلاب و طلابی که در ابتدای آشنای با فرانده اشتاد هستن مفیدتر و ضروریتره نصفت به معنای امن اینجا هم چند تا اثر وجود داره که مختنم هست کتاب الگولیتم اشتاد استاد باستی که منتشر شده کتاب الگوریتم اشتاد استاد جلالی که منتشر نشده، ولی فایلش هست. الگوریتم که حالا دوستان آشنا الگوریتم کل فرایند، حل مسئله از اول تا آخرش رو میگن الگوریتم یا ال ال از الخارز میگرفته شده. یعنی اسمش ام میگیده چی نیست. فارسی یا عربی. کتاب روشناسی کاروردی و صدبائزی که صبح زیارتشون کردید، بله توی کانالشون کتاب رو هم گذاشتن و گیرایش جدیدش رو هم دارن انجام بیدن و یه جزوی از استاد درایتی که استاد واسطی جلالی جلابی و درایت مشهد هم. یعنی خیلی از هرچمداران این دانش توی خراسان هست های وایدی هم خراسان هست جزو استاد درایتی هم حالا شاید برای ما توی کانال بذاشتیم این نمونه مثلا یک الگوریتمیه که از اول تا آخر فرنده اشتاد توضیح داره گرچه خب مشخصه فقط من می میکنم کسی این الگوریتم ها رو بدون مجتهد نیست توی نیست من الگوریتم مجتهدم اما من خب خیلی از این الگوریتم ها هنوز درهاد شدن خیلی رو با هم تفاوت نظر دارم بعضی امکنه نفذیرم بعدم این انجام دادنش مهمه ولی بله بخوایید، میخوایم من الگولیزم حل مسئله فقری غیرمستحدثه رو همه همون بررسی اقوال، بررسی عدله اقوال، جنبن سفه گامی که تمام درس خارج هست، بررسی اقوال میکنند، بررسی ادله اقوال میکنند، جنبن میکنند این الگولیزم همه درس خارج، الان همه همون مشتاق شدیم، خب با... نشدیم خیلی مهمه که شماها بر اساس اول چجوری می‌کنید بر اساس ادله عقبال می‌کنید چیکار می‌کنید میتونید می‌تونید بیان بعدم جنببندی می‌کنید چیکار می‌کنید یعنی با صرف الگوریتمات تصور نکنید مشهد اینم باز نقطه‌ای که ارص کردم که باز از اساتید نخواهم که درخواست که بیان برای ما مثلا فرایت فرایندها یا فرآیندهای کلان رو برای ما توضیح بدن خیلی از اساتید ممکنه به تفصیل نتونن با ما فراینده کلان ناخورد فرند عاشون رو توضیح بدن ولی اگر ما سوال داشته باشیم بعد از مدتی خودمون مهندسی مرخص میکنیم اون در خارج رو پاسوخشو میگیریم مثلا سوال داریم آقا فراینده بررسی احوال به چه شکلی انجام می میتونیم به جای اینکه از استاد مستقیما بپرسیم یا از استاد بخوایم برای ما توضیح بده خب کنیم ببینیم سرش کار میکنه و اون روشش رو مهندسی مرکز میکنیم متعاجع و باز هم تحکید میکنیم توافر رو نباید داشته باشیم کسیت درس خارج از اول تا آخر گام ها رو بگن بعد خورده فرانتا رو مرسوم نبوده نیست و شاید تالی فاسدهای هم داشته باشه. ولی شیوه الان که حالت کارگاهی تر اگر پیدا بکنه شیوه مفید ما می تونیم خودمون مثلا یه مسئله ترپی داشته باشیم زیر نظر استاد و مسئله پرخمون رو حل بکنیم. شاید استاد نتونه به ما بگه گام آ چیئه دقیقاً و خرد فرآیند آ چیئه. ولی اگه هر مسئله ترپی داریم حل می‌کنیم از استاد کمک می‌گیریم، خودش قدم به قدم به ما کمک می‌کنه. کلا من این کار رو بکن، الان این کار رو بکن، الان این کار رو بکن. یکجانه میتونه به ما یه بسته بده. ولی خرد خرد اگر مسئله ترپی رو زیر نظر حل بکنیم، با ما راه میاد به ما کمک می‌کنه. پس مع... معنای دوم روش‌ناسی اجتهاد شد شناخت روش اجتهاد اما که این شناخت شناهد روش یک بخشش روش اجتهاد کلانه گام های کلانش، یکم خرد فراینهاش مثلا اگر گام های کلانش یازده بخش باشه، هر کدوم از تام خودش یک خرد فرایند دارد مثلا یه گامش بررسی روایت، خب بررسی روایت خودش خرد فرایند داره دید. بررسی سندیشه، بررسی دلالیشه، این رو باید دونه دونه به صورت الگوریتفاق داشته باشیم. که عرض کردم منابعی هم اینجا وجود داره، باز این هم در حال شدن منابع زیاد وجود نداره، در حال تکمیل و تکامل هست و بازم تحکید میکنم، همین درس های خارج موجود، هرچند به این سبت بیان نشود، کاملا قابل استفاده است به ما ما که ما سوال داشته باشیم ما سوال داریم این اشارات به چه شکلیه موقعی که استاد داره درس می‌ده خودمون میتونیم مهندسی معکوس محردس کنیم و متوجه بشیم استاد داره چه کار می‌کنه و به جایی اینکه فقط حل مسئله فقهی استاد درس حاضر کاغذ یاد یادداشت بکنیم یه مسئله فقهی هم برداریم میشه موضوع صرف سه چهارمون و زیر نظر استاد قدم به قدم مسئله فقهی رو حل بکنیم یعنی خود استاد به صورت خورد, خورد اومده گام های حل مصدفقی رو به ما آموزش شده گرچه اول اگر ازش میپرسیدید نمیتونست به شما همه چیز رو بگیر ولی خورد خورد چون ارتکازی میدونه انها رو میتونه به شما همه رو آموزش شاده. پس تصور نکنیم که اگر درس در فیلم نیومد از اول تا آخر روش شده درس خوادی خوب نیست سرمایه ما همین درس خارجه و از همین درس خواد هم دست میده. به که ما سوال داشته باشیم و با نگاه فهم روش اجتهاد اون استاد درس خارج بریم تو درس خارج بشینیم نه این که دارم بشینم و مقدر باشم آراء فکری این استاد یا مقدر تجروعش های فکری استاد بشم. نه اگر هدف اون اینکه این استادی درس میده من میخوام بفهمم که روش اجتهادش چی؟ با این نگاه پرسش گرانه هر درس خارج بشید شما بعد از پنج سال، کلیتش رو متوجه میشید، جوزیاتش رو هم متوجه میشید، بعد از پنج سال بیام زیر نظر اصول کار بکنه اصلا یه پرسشی که ممکنه پیش بیاد فرقه، روش با اصول فقه که گاه اوقات مطور یه همون بحث که تو معنای اول که شما مکتب شناسی تحقیق میکردید، به نظرم خیلی روشنه که هیچ ربطی اصول فقه ندارد چما تو اصول فقه میایی یک قوانین و اصول عامی رو که تو فقه ازش استفاده میکنید میخونید. ربطی به شناخت مکاتب فقهی ندارد. نه ربطی شناخت دستگاه سمباتی مشاهدان بزرگ ندارد. چون هیچ جای اصول فقه نمیبینید که بیاد مکاتب فقهی رو اصلا تفکیق بکنید. روشناسی اشترا تو معنای اولش زید فلسطه فقه, فقه قرار میدید. هیچ ربطی به اصول فقه نداره تو معنای دوم که شناخت روش اشتاد هست میتواند برخی از بخشهاش تو اصول قرار بگیره کمانی که مثلا توی فرایند کلانش حلقات شهید سر به این سمت نزدیک شده و سعی کرده تبدیل فسودش شبیه گام های کلان بشه در این حال بازی یه سری بحث های روشناسی اشترهاد تو به معنای دومش هم تو اصول فقه جا نمیشه. مثلا روش بررسی اقوان، یا روش مثلا تحریر محل نزاع، اون کجای اصول فقه میخواهی پردیم؟ حالا در این حال یعنی به ساعت عادی تو اصول فقه الانمون معنای دوم روشناسی اشترهاد یه سری بخشش جا نمیشه. حالا اگر بعدا اومدن یه تفتیب کاملتری انجام دادن ممکنه این بخشان بره توی اصول فقه جا بشه فعلا توی معنای اول که شناخت دستگاه استنباطی فقه های بزرگی توی اصول فقه نیست و اصلا هدف دوتا علمه افرام میکنی تو معنای دو اونش میتواند یک سری مباحثش شاقل بشه بره. ولی باز سری مباحثش مثل, مثل روش برستی اقوال چطوره کجای اصول فقه تو فعلاً جا نگرفته توش، حالا ممکنه در انده جا بیدید، حالا اشکالی هم نداره. آخرین ای هم که عرض بکنم روش‌گناسی اجتهاد توی هر معنایی که داشته باشیم، می‌تونیم سطوحی رو تعریف بکنیم و توی این سطور کار یکی توی فقه فردی فقه نظام های اجتماعی و فقه حکومتی که میتونیم بررسی بکنیم که اولا اجتحاد متعارف در اینها چطور بوده و اینکه فقهای های بزرگ دستای استنباطیشون موقعی که بروت کردن توی اینها به چه شکل خب من زمانم تمام هست ممنونم از همراهی همه بزرگ اگر در مورد اقبال، کدوم اقبال باید خانده شده چون مسلمان خاندن هم ممکن نیست، قطعا همینطوره توی خورد فرایند بررسی اقبال این بحثیش که کدوم اقبال باید دیده بشه حالا باز سرش هی قطعیتی وجود نداره، مثلا مسلم مبلغی نگاهشونه که ما روی کردیم مثلا اقبال رو بدیم زمان من و موضوع حقی بررسی خورده فرایند ها نیست که مثلا هر کدوم از خورده فرند ها به چه شکلی باید انجام میشه. در بررسی عقل دو سه تا مطلب که خورده به چه شکلی است که کانال گذاشتیم از به همین بحث از استاد مبلغی و دیگاهشون رو مال بررسی گفتن که اگر کسی مسائل رو بدونه یعنی کسی نخواهد مشتهد بشه، بازم اینها رو باید بدونه، بله. یه سریش مثل کلیت روش اجتهاد، در مثلا امام جمعه شده بخواهد در موضوع حرف بزن. تو هر موضوعی، با هم وقتی کلیت روش اجتباهه، مثلا مثل هم آقایی که ارز کردم، مشتهد نیست کتاب درشته درباره یه موضوع، موضوع خانواده و اینا هست. کلن اجتباه فهم یعنی یعنی از غوروش قضیه اشتباه بوده مثلا نمیدونه که مثلا اولین گام بررسی یک مسئله دینی چطور اصلا قمنه را دارید اولین بررسی رو آن ببینید اینجا میگن یعنی که اگر طریق استنباط را یاد گرفتید آن وقت به جز احکام ارزش های اخلاقی ما هم درست از کتاب و سنت استنباط میکنید برای فراگیری معارف اسلامی اجتهاد لازم است یعنی حالا شارت واسه با همین معناش که شما هر موضوع دینی رو بخواهی درواش حرص بزنید. مثلا نمیخواد خواهد اون محجر بشه، رساله بشه. بناخره فهم روشمند از دین باید داشته باشه. همین قرآت های مختلف از دین همین میشه. یه کسی کوچه ای رو بگیره و بدون دعای تفتیب بخواد. گفتن که حضرت ما مور به واعتسته رو وقت کردن. توی این کتاب آهی زیادی فرد دارن. میگن که استاد مری گفتن که چند ساعتون میشه شما چند چند سال اضافه کرد این رو خود اساتید گفتن یعنی حالا اینکه یه تیکاریش است این چند سالی که ذکر میکنن مثلا سه سال یا 4 سال منظورشونه که شما بعد از این چند سال میتونید در دستگاه استمباتی مسلط بشید اول و آخر دستگاه فهم دین چطوری از کجا شروع کنه به کجا ختم اما آره اگر بگید بین مامه ای آدم مجتهد بله به من حرف ولی کسی به منو مجتهد نمیشه بعدش چه 4 سال بعد چند تا مسئله فرقی با اون دستا استنباطی حل بکنید تا شما بشه که گفتن 4 سال خودشون هم بپرسید میگن میگن 4 5 سال شما استنباطی رو درست بکنید یه چند سالم زیر نظر استاد و همون دستگاه سمباتی مسئله حل بکنید، توشید مشکل گام مرحله اولش ولی همون ستوارس ها کنید می‌فرماییم که آیا مکاتل تفیک تجمیز متعدد و متعدده بواد شد ناشد اختلاف در مبانی اصولی نیست حالا من نمی‌دانم این اساسیتون را من رست به اساسیتون ندارم فکر میکنم بعضی از اساسیتون به طور خاص درباره این دو مکتب بیان با صحبت میکنم فقط مال مبانی اصولی نیست اینه توی همین تقسیم بندی هم که اینجا بود که استاد علی دوست بحث دارن میکنن مثلا توی تحتیق قواعد یا بیزن توی تجمید زنون خیلی سمت مثلا اصول عملی کمتر میرد. یعنی نگاهشون به مقاصد شهره شه. پیشته. فقط از مبانی اصولی مکاتل فقه ایجاد نمیشه. یا مثلا فرض کنید توی نگاه اقلایی که از اتای امام دارن به معاملات یا نگاه اجتماعی که بعضی از فقه ها دارن مثل شهید سج. این لزومن از اصول فقه به دست نیمانید. دیگه نساطی درس خارجه که ترخواه مکتب قوم، الان اکثرا مکتب قوم توی قوم اکثرا مکتب قوم هست. حالا هم موثره توی قوم اکثرا از توی که دارم بحث میکنم ترخواه مکتب قوم دارم. یا مکتب تجمیزون رو دارم بحث تبریزی و شاگردانشون که نیشناسی دلواته نوع اشتادشون به مکتب نزد نزده. ترگرچه همون بزرگوان هم آدم تو باز اگر پرسشی بود، از طریب فضایی مدرزه می‌تونام خدمت بسان باشیم سوال خوبیه، می‌گم که توی کسی بخواد فکر تخصصی کار بکنه این نسبتش با در اشناسی چی میشه توی این استاد راستاد باز بازدارد که ما ناظر به فقه های تخصصی هم میتونیم روش‌شناسی اقتصاد تخصصی داشته باشیم یعنی طلبه اول باید یه روش‌شناسی اقتصاد عمومی بداند که به صورت عمومی در عبادات و معاملات شبه اقتصاد به صورت کلی به شکلی بعد اگر خاص وارد فقه تخصصی بشود طبعا اون فرقه تخصصیش هم میتونه یک سری روش های خاص خودش رو داشته باشه مثلا بخوا سفراستون توی باز از های تخصصی که مستحدثه تره مثلا مثلا فقه رسانه با مثلا فقه تربیت فرق میکنه شما فقه تربیتتون خیلی از مسائلش مستحدثه نیست برخلاف فقه رسانه باز بعضی از اینکه شما در شناسی ادشاد به صورت عام رو یاد گرفتید بعد که وارد فقه رو وارد فقه تخصصی شدید اونجا هم رو شناسیه ادشاد تخصصی خودش رو میتونید دنبال بکنید که مثلا توی اقتصاد، در شانسش در اقتصاد، اجتهاد در شانسش در تریاد، در شانسش در رسانه، این هم ما هم تفاوت‌هایی دارن. این مدل فقه در شانسش خیلی تخصصی‌تر میشه. مثلا استاد نهاوندی مثلا مباحثی رو داشتن توی قاورشناسین اشعار در فقه رسانه. مثلا خود آجا علی دوست در شانسش در فقه اقتصاد. یعنی بعد از شما کدیت رو یاد گرفتید توی هر کدوم از صرفت تخصیصی هم می توانید گروه کنید. پرسیدن که حالا این مقاصد شریعه خیلی بحثش طولانیه. یکی از بهترین درسته دیم که حروتگردان استاد علی دوست هستن که بحث مقاصد شریعه باز استاد باسطی هم توی کتاب الگویز نشدادشون یه بحث خوبی را اونشون دارن اه... حالا پرسنه که منبع مستقله یا نه اه... نه حالا توی دستگاه استنباطی مختلف متفاوته یعنی نمیشه گفت که خیلی مستقله چون اه... خیلی نمیشه به اینکه که در اساسه این کسی فتوا بره. من تا کسی دون این رو منفان نغاز شعر رو مستقلاً بخواد کسی بهابش بده برای یک منبع مستقل و طرفش بیشتر در کنار دقیه عدله قرار میگیره و اونها رو تقویت میکنه. خب، حسنه باشید. اگر باز فرسشی بود به صورت مجازی هم میتونم در قرمت دوستان باشیم. عارض و دارم برای سلام و